أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما مولانا وصاحبنا بقية الله في الأراضين روحي وعرواح العالمين لتراب مقدم الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعة وتمتعه فيها طويلة السلام عليك يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء السلام عليكم يا أهل بيت النبوة در بحث استدلال بشهود براي إثبات وحدة شخصي وجود بوديم که مواردی رو از کلمات ابن عربی و بعضی دیگر ذکر شد که چه بسا از اینها استفاده وحدت شخصی وجود شود. ارز کردیم که ابتدا یک نگاه اجمالی به حجیت شهود خواهیم داشت و بعد به بررسی خود این شهود هایی که در این باب ذکر شده انشاالله به بررسی اجمالی اونها خواهیم پرداخت نکاتی رو در حجیت شهود عرض کردیم که اولین ای رو که در جلسه گذشته عرض کردیم این که این گونه مشاهدات و ادراکات و این شهودها ها اسباب مختلفی میتواند داشته باشه که یکی از اسباب اون میتواند القاات شیطانی و تمثلات شیطانی باشد که اهل عرفان مستلح از این جور عبارات دارند که این مکاشفه مثلا مکاشفه شیطانی بود نه مکاشفه رحمانی لذا علاوه بر اینکه کلمات مختلفی از اینها نقل شده در این زمینه جریانات مختلفی از مکاشفات شیطانی ذکر شده روایات متعددی هم در این زمینه وارد شده و تمثلات شیطانی رو برای انسان بیان کردن که روایتی رو در جلسه گذشته از کردیم مناسبه که یک روایت دیگری هم به محضر عزیزان شادلا تقدیم بکنیم این روایت هم مرحوم کشی در رجال کشی کردند. ان سعدن ان احمد ابن محمد ان ابی و یعقوب ابن یزید ول ابن سعید ان ابن عبی عمیر ان ابراهیم ابن عبدالحمید ان خزر ابن عمر نخعی و در بعضی از نسخ حفص ابن عمر نخعی این می باشد که سند این روایت سند خوبی و سند مورد اعتنایی است که حالا از کردیم دیگه بحثهای های رجالی دقیقتر رو ان الله در جای خودش باید اینها رو طرح بکنیم قال کنت جالسا عند عبی عبد الله عليه السلام نزد حضرت نشسته بودم فقال له رجل یک فردی آمد به خدمت حضرت و ارزه داشت که فدای شما شدم ان ابا منصور حدسنی انه رفعه الارب ربه ابا منصور به من خبر داد که به آسمان بالا رفته و به سوی پروردگار خودش رفته است و مسح على رأسه انقدر بالا رفته تا اینکه خداوند متعال به سر او دستی کشیده از سر او رو مسح کرده است لمس کرده است و قال لهو بالفارسیه و با زبان فارسی به او گفته یا پسر در نسخه کشی خود یا پسر آمده در بهار در این نقل به آمده فقال له ابو عبدالله علیه السلام و آقای امام صادق علیه السلام فرمودن حدسنی عبی پدرم حدیث کردن برای من انجدی از جد خودم ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول خدا صلی الله علیه و آله و وسلم فرمودن قال ان ابلیس اتخذ عرشا فی ما بین السماء و الارض ابلیس یک عرشی رو برای خودش قرار داده بین آسمان و زمین و تخز زبانیتن که عدد الملائکه یک سربازانی هم به عدد ملائکه چقدر ملائکه زیاد هستند در روایات تعداد ملائکه بسیار زیاد بیان شده مثل عدد ملائکه این برای خودش سرباز قرار داده فعزاده آ رجلن بعد حضرت قاعده کلی بیان میفرمایند فرمایند فعزاده آ رجلن اگر شیطان یک فردی رو بخاند او، اون فرد شیطان رو اجابت بکند و و عقبه این پشت سر شیطان راه برود و تخطت علیه الاقدام جا پای شیطان بگذارد ترا آلهو ابلیس ابلیس برای او متمثل می شود ابلیس رو می بیند البته چه بسا ابلیس به اون صورت حقیقی خودش ظاهر نشود و همینطور که در این جوادت آمده به اشکال مختلف مثلا در اینجا به صورت پروردگار برای این فرد متمسل شده این ابلیس را می‌بیند و رفعه الی بالا می‌رود به سمت ابلیس یا به سمت ابلیس می‌رود و این ابا منصور این ابا منصوری که تو این رو از اون نقل کردی کانم رسول ابلیس این همون فرستاده ای ابلیس همین طور که خدا اهنداموتعال انبیایی دارد فرشته و فرستادهایی دارد خدا ابلیس هم رسولی دارد لعن الله ابا منصور حضرت نگفتن آفرین چه مکاشفه ای به به چه مقامی رسیده گفتن خدا لعنت کنه ابو منصور رو لعن الله ابا منصور سلاسن سه مرتبه حضرت فرمودن لعن الله هوا منصور فرصت نیست و جای این بحث نیست که ما روایات متعدد رو در این زمینه بیاوریم و به بررسی و تحلیل کامل این مبحث از روایات بپردازیم اما همین مقدار اجمارا ارز میکنیم که حتی در بعضی از روایات آمده که صاحب بدعت رو چه بسا شیطان به اون خشوع و بکا هم بهش میده یعنی این عبادت میکنه و در حال عبادت این حالت خشوع بهش دست میده حالت بکا بهش دست میده اما اینها همه از شیطانه لذا ممکنه کسی با عبادت خاشعانه از اون طرف گریه هم بکند و مکاشفه هم بکند و همش از ابتداد و انتها شیطانی باشد لذا عبادات در روایات ما بهش چهت داده شده شد برای عبادات بذاشته شده که اون خودش بحث مفصلی دارد که حالا از جمله مکاشفات شیطانی ابن عربی رو می توانیم ما مکاشفاتی که اون در جاهای مختلف در فضل عمر و ابوبکر ذکر کرده مکاشفه‌ای رو که ذکر کرده که در اون مکاشفه به این مطلب میرسد که عمر و ابوبکر از وجود نازنین آقا امیر علی علیه السلام افضل هستند خب ما این جور مکاشفات رو به عدل قطعیه قطعا میتوانیم بگوییم از جمله مکاشفات شیطانی ابن عربی و امثال اون هست که خود این فرد هم نفهمیده که اینها مکاشفات شیطانی هست بعضی از مکاشفات می و ممکن است که در اثر تمثل سایر اجنه باشد که علاوه بر این که در این زمینه باز روایات متعددی آمده در بحث تمثلات اجنه روایات در این زمینه فراوان است در بحث اجنه فراوان است علاوه بر این در علوم غریبه نیز دستورات مختلفی آمده که در اثر ارتباط با اجنه تمسلات و چه بسا مکاشفاتی برای انسان رخ میده که حالا خود این بحث مفصلی میطلبه که از مجال بحث ما خارج است و همین مقدار اشاره کافی است که عزیزان انشاءالله پیگیری بفرمایند که در بحث علوم غریبه خود این بحث مفصلی دارد بعضی از مشاهدات ممکن در اثر سهر چشمی باشد که این هم باز علاوه بر اینکه شواهدی از روایات دارد در مباحث علوم غریبه طرق مختلف و دستورات مختلف و مباحث مفصلی در این زمینه طرح شده بعضی از این مشاهدات ممکنه که در اثر تخیلات و توهمات نفس انسانی باشه که خود این هم باز شقوق مختلفی داره گاهی وقت در اثر اون القاعت نفسانی انسان به خودش هست القاعت نفس انسان به خود انسان هست که یک مطلبی رو انقدر انسان به خودش تلقین میکنه انقدر تلقین میکنه که این مسئله رو و این مطلب رو بیان مشاهده میکنه و چه بسا قوه مخیله انسان چنان قوتی پیدا بکنه که آن چیزی رو که تخیل میکنه این در مقابل چشمش متمثل می میشود و اون رو میبیند. گاهی اوقات در اثر محرک های خارجی بر جسم انسان این توهمات نفسانی صورت میگیره مانند این قرص‌های روانگردان که سبب میشه مشاهداتی برای انسان حاصل شود که بعضی از مشاهدات افرادی که از این جور قرص‌ها و ادویه مصرف کردهاند با مشاهدات اهل عرفان مستلح تطبیق داره تا جایی که حتی بعضی از کسانی که در مباحث عرفانی کار کردند و دقت چندانی چه بسا در این مطالب نداشتهاند ممکن است که از اسباب حصول به این مقام رو گاهی اوقات این استفاده از این ادویه و ها و امور دانسته اند و معترف‌اند که بعضی از مشاهدات اینها منطبق است با مشاهدات عرفای مصطلح گاهی اوقات این تمسلات و توهمات نفس انسان در اثر ضعف جسمی برای انسان حاصل می شود که خود این و امور دیگری که در این مورد مازه کردیم خود اینها باز بحث های مفصلی دارد که از مجال بحث ما خارج است و اسباب دیگری نیز در این تمثلات نفسانی و جسمانی ممکن وجود داشته باشه که دیگه از ذکرون ها داریم میکنیم بعضی از مشاهدات هم ممکنه که اینها مشاهدات ربانی باشند کما این خداوند متعال در مورد حضرت ابراهیم علی نبینا و آلهی و علیه السلام در قرآن کریم بیان فرمودند که و کزالکن نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض و من الموقنین و این چنین ما به ابراهیم نشان دادیم ملکوت آسمان ها و زمین رو تا اینکه اون از موقنین باشد خب این مشاهدات مشاهدات بانی و مشاهدات رحمانیس و از جانب خداوند متال اینها حاصل می شود. بنابراین، مکاشفات و مشاهدات می اسباب مختلفی داشته باشه و حتی یک مشاهده واحد چه بسا از اسباب مختلف این مشاهده واحد حاصل بشود لذا باید ملاکی برای تشخیص مشاهده ربانی از غیر ربانی وجود داشته باشه که اون ملاک همان مطابقت با شریعت اسلام و مطابقت با اون عقل حجت و عقل است. لذا بعضی از اهل عرفان و مستلح تعبیر میکنند که شهود باید با شهود برتر که همون شهود وجود نادرین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست و شهود این به مرسومن علیه هست باید هر شهودی با این شهودها سنجیده بشه و در واقع مفاد شهودات معصومین صلوات الله عليه مجمعین همون کلمات اون بزرگواران و است که اون بزرگواران بیان فرمودن که این یعنی باید با شریعت اسلام و فرمایشات ائمه معصومین علیه السلام باید اینها سنجیده بشه پس در حقیقت اون چیزی که حقیقتا دلیل هست همون شریعت و فرمایشات الهی و وحیانی و حالا عقل حجت در واقع اون چیزی که حقیقتا دلیل هست اینها هستند و خود شهود فی نفسه دلیل مستقلی نمیتواند داشته باشه و کارایی مستقلی نمیتواند داشته باشه نکته دومی که در بحث حجیت شهود باید ما این رو طرح بکنیم اینه که حالا بر فرض این که این مشاهدات, مشاهدات ربانی باشد اما خب ما از کجا مطمئن باشیم که دریافت اون مکاشفات اون معنای که این مکاشفات میخواد به ما الغاب بکنه دریافت اون به صورت درست و صحیح صورت میگیره و تفسیرهای نفسانی به طور ناخودآگاه در اون دخیل نیست مثلا در بسیاری از مکاشفات آمده که میگه من در حال مکاشفه علم داشتم که فلان مسئله مثلا اینگونه هست به فلان چیز در حال مکاشفه علم داشتم خب از کجا این علمی که برای این فرد در این مکاشفه حاصل شده همان تفسیر نفسانی خود این فرد نباشه بلکه یک القای ربانی باشد یک صحنه رو دیده یک تصویر رو دیده چیزی رو مشاهده کرده و به این نرف این فرد فکر کرده که این اینگونه است از کجا این علمی که برای اون حاصل شده اون تفسیر نفسانی خود این فرد نباشه یا مثلا در خود مکاشفات لاهیجی که بیان کردیم بعضیش رو آمده که نور حق ظهور کرد خب از کجا فهمیدی که اون نوری که ظهور کرد همون نور حضرت حق بود خب شاید چیز دیگری بود اینی که تو میگویی نور حق هست آیا این تفسیر نفسانی تو نیست کما این که در همان روایتی که از کردین فکر میکرد خدا هست اینی که داره مشاهده میکند اما خب شیطان بود رضا ممکنه که تفسیر نفسانی خود انسان دخیل باشد یا مثلا توصیفاتی که می کند از اون زیبایی ها از اون عظمت ها و امور دیگر از کجا باز اینها توصیفات و برداشت ها و تفسیرهای شخصی خود این فرد نباشد یا مثلا بیان کرد که من دیدم دیاتم دیدم که تمام ذراتم فانی شد بعد ساری شدم بعد دیدم مدبر عالم منم و از این جور اموری که ذکر شد خب مگه داره این فد فیلم سینمایی نگاه میکنه با توضیحات یک فردی که داره مراد خود فیلمساز رو بیان میکنه با نویس اینطور که نیست خب این داره گزارش میدهد از فنای خودش و بعدش بعد از فنای خودش و گزارش میده از متلاشی شدن خودش بعد از این متلاشی شدن باز داره گزارش میده و اتحادش با خداوند متعال رو گزارش میده خب از کجا فهمیدی که اینی که واقعا متلاشی شده خود این فرد هست از کجا فهمیدی که خود مدبر و قیوم عالم خود اوست یک حسی بهش دست داده که بله من مدبر عالم هستم عالم قوامش به من هست حالا این حس رو از کجا تشخیص دادی که یک امر ربانی و صرف یک خیال و تفسیر نفسانی خود این فرد نیست از کجا فهمید که واقعا ساریس در کل عالم این سریان در کل عالم رو از کجا این فرد فهمید که در همه اینها فی الواقع داره این فرد تصاویری ای رو میبینه با تفسیرهایی که از خود نفس این فرد نسبت به این تصاویر صورت میگیرد و اینجور افراد که معصوم نیستند که ما همان حرفی رو که در مورد وجودات نازنین معصومین بیان می‌کنیم که معصومین وجود نازنین انبیاء الهی، وجود نازنین در رسول خدا معصومین صوات الله علیهم مجمعین اینها در تلقیه وحی در دریافت وحی هم اینها معصوم هستند در نقل وحی هم معصوم هستند خب این افراد که معصوم نیستند و از کجا این تلقی که اینها از این سحنا کردن تلقی صحیحی است و خلدهای نفسانی در اون دخیل نیست لذا یکی از اساطید مشهور فلسفه فعلی قوم این رو نقل می کرد که میگفت به کسی از این سنی ها که می من ابوبکر رو با وجود نازنین رسول خدا در کنار رسول خدا من شهود کردم می گفت من ازش پرسیدم که شما از کجا فهمیدی اون کسی رو که دیدی در کنار رسول خدا این ابوبکر بود کس دیگری نبود می گفت خب اون سوال رو به سوال پاسخ داد گفت خب یک شخص پیرمردی شایدم حالا توصیفات خاصی هم ذکر کرده مثلا با عساوا خاصی این مگر غیر از ابوبکر کس دیگری هم میتواند باشد غذا خب در اینجا کاملا خود این فرد شاید معترف شد که بله این تفسیر نفسانیه من این پیچ زمینه است که در ذهن من هست و این تصویر خودم رو به این نحو دارم من تفسیر میکنم لذا در بعضی از حتی روایات بود که ما این که در این روایات خواندیم در بعضی از روایات دیگری بود که ممکن است که شخص بعضی از تمثلاتی رو که میبیند خیال کند که مثلا امام معصوم آمده خب در واقع امام معصوم نیست خب امام معصوم رو که ندیده قبلن خیال میکند که این امام معصوم هست اما حضرت میفرمائید نخیر این امام معصوم نیست که حالا این مضمون روایت رو اعز کردم که حالا دیگه تفصیل این روایات مجاد دیگری رو می تلبد. و این مسئله در خود خواب و رؤیا کاملا برای انسان ملموسه که انسان یک تصاویری رو در خواب می بینه در عالم رؤیا می بینه. بعد میگه که من در خواب این رو علم داشتم که مثلا فلان تصویر مثلا فلان کس هست یا خودم رو حتی به شکل کسی دیگری می دیدم کسی دیگری رو می دیدم به گمان می کردم که خود من هست تصاویری رو در خواب مشاهده کرده و برداشت‌هایی از این تصاویر کرده اما خب وقتی که در عالم بیداری اینها رو بررسی می‌کنه، که هیچ شاهدی وجود نداره که اون تصویر همون است که من در عالم خواب از اون تصویر داشتم نتیجتاً به این می که حتی اگر این مشاهده مشاهده ربانی هم باشد نه دلیلی بر دریافت درسته این مشاهده داریم که حتما اینها دلیل به نحوه صحیح و درست دریافت می کنند و نه دلیلی بل نه بر نقل درست اون مشاهده و اون مکاشفه از روی شخص مکاشفه کننده داریم در غیر امام معصوم و چه بسا این مشاهدات اگر ربانی باشد و خداوند متعال می مشاهده ربانی رو یک مشاهده رو خداوند متعال به کسی عنایت بفرماید خداوند متعال خودش می خواهد این فرد چیزی رو ببیند شاید غرض به حکمت دیگری از جانب خداوند متعال در حصول این مکاشفه برای این فرد دارد مثلا خداوند متعال میخواهد یک بشارتی رو به شخص مکاشفه کننده بدهد و اون بشارتی که از کلیات مکاشفه برداشت می شود نه اینکه اون شخص مکاشفه کننده یک معارفی رو دریافت بکند اونم از جزئیات مکاشفه و چه بسا حکمت های دیگری هم داشته باشد لذا خب ما نمیتوانیم دلیلی بر حجیت این مکاشفات و شهودها پیدا بکنیم بحث بعدی که در شهود ارز کردیم که باید به اون بپردازیم حالا این شهودهایی که گزارش شده برای وحدت شخصی وجود اینها واقعا مفادشون همون مفاد وحدت شخصی وجود هست یا نه چیز دیگری هست و با چیز دیگری سازگار هست می توانیم به نحوه کلی بگوییم تمام اون چیزی که تمام اون چیزی که از مکاشفات و مشاهدات ابن عربی زک شده در وحدت شخصی وجود همه اینها با وحدت شهود سازگار هست و می تواند از این باب باشد که این فرد و شخص سالک به عنوان مستلح خودش این با ظهور حضرت حق و با دیدن حضرت حق چنان محو تماشای حضرت حق می شود که التفاتش از غیر بریده می شود یا همونطور که وقتی خورشید می آید با نور خورشید نور ستارگان دیگر دیده نمی شود ستاره دیگر در نظر ما محو می شوند با ظهور حضرت حق بقیه امور و غیر حضرت حق از نظر ما محف می شوند که اما اینکه که در همین طور که در جلسات اول توضیح دادیم که از این تعبیر میکنم به وحدت شهود چه بسا در حقیقت همه این مکاشفات با وحدت شهود سازگار هست و دلالتی بر این ندارد که حالا که من غیر حضرت حق را نمی بینم حالا که در این فرد این شخص را دارم می بینم اما حضرت حق را می بینم خب یعنی وجود این شخص همون وجود حضرت حق هست نه من چنان به عنایت الهی مثلا ملتفت شدم به حضرت حق چنان توجه پیدا کردم به حضرت حق که فقط حضرت حق را مشاهده می کنم و غیر حضرت حق را دیگر نمی بینم لذا همه اینها با وحدت شهود سازگار هست و حتی توضیحاتی که ابن عربی در اون هفت مرتبه فنایی که عناوینش رو ما از کردیم برای عزیزان توضیحاتی که در اون مراتب مختلف فنا خود ابن عربی بیان میکنه همه اونها دال بر وحدت شهود هست مثلا در مرحله چهارم فنا جریانی رو نقل میکنه از استاد نحوی که این فرد منکر فنا بود فنا رو عبود نداشت اما با آمدن لشکر اون خلیفه وقت در اون شهر چنان این محو عظمت مثلا اون لشکر میشود که از امور دیگر اصلا به طور کلی غافل میشود بعد از این جریان این فرد معتقد به فنا میشود و فنا را میپذیرد خب همه اینا بریده شدن التفات از غیر هستن اینکه غیری حقیقتن وجود ندارد و شهودهایی هم که حالا ذکر می شود احیانا از کلمات همین عرفای مصطلح و متصوفه که اینها دال بر اتحاد با حضرت حق هست اینها اصلا دلالتی بر وحدت شخصی وجود نداره اینی که چیزی با چیز دیگری مثلا متحد شود آیا معناش اینه که از همون ابتدا هم اینها حقیقتا یک چیز بودن دو تا چیز نبودند ما یک شکری رو مثلا حالا به عنوان تغریب ذهن در آب مخلوط میکنیم اینها طبعا محو و شکر در آب آیا این محو شدن که اینها تعبیر میکنن که مثلا وجود من محو شد در خود وجود حضرت ها آیا این یعنی که شکر از همون اول آب بوده آبم شکر بوده نه این اتحاد هیچ ربطی به وحدت شخصی وجود نداره ربطی به این نداره که از همون ابتدا هم یکی بود لذا همه اینها ذکر میکنن که بله من خودم رو دیدم بعد مثلا در همین مثال هایی که از کریم در همین مقاشوات متلاشی شدم و متحد شدم و چه بسا حتی همین شهودها رو هم ما اینها رو سازگار بدانیم با وحدت شهود که با ظهور حضرت حق حقیقتاً چیز دیگری دیده نمی شود از طرفی خود فرد شهود کننده از نفسانیات خودش از نفس خودش هنوز قافل نشده از طرفی نفس خودش را می بیند از طرفی در این شهود التفاتش از غیر بریده شده فقط حضرت حق را میبیند از طرف آن چیزی را که میبیند حضرت حق هست و از طرف دیگر موجودیت نفس خودش رو هنوز میبیند غافل از نفس خودش نشده است لذا نفس خودش رو متحد با حضرت حق میبیند چه بسا از این باشد که این هم می شود از اون تعبیر کرد به وحدت شهود کما که بعضی از قائلین به این امور چه بسا این تفسیرها رو برای اینها کردن نتیجتا اولا خود حجیت شهود ثابت نیست در غیر امام معصوم در غیر معصوم، ثانیا بر فرض این که ما حجیت شهود رو هم قائل باشیم این شهود ها هیچ دلالتی بر وحدت شخصی وجود نخواهد داشت بنابراین این دلیلی که با تمسک به شهود برای وحدت شخصی وجود آوردن این دلیل نیز دلیلی باطل و بی اساس هست و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو